کتاب آخ بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام به جانب چپ گرایید و ما هم به سوی چپ روانه شدیم به اندک مدتی گردن اسبان نمایان گشت و ما تشخیص دادیم و چون دیدن ما راه به ایم آنها هم سوی ما بگردیدند نوک نیزه آنها مانند زنبور اصل و پرچمها مانند بال مرغان بود به جانب زوحسم شتافتیم ما پیشتر رسیدیم از ایشان حسین فرمود خیمه و خرگاه برافراشتند و آن مردم که نزدیک هزار سوار بودند با هرربن یزید ریاهی می آمدند تا در مقابل ما بیستادند در گرمای نیم روز حسین و اصحاب او امامه بر سر بسته و شمشیر همایل کرده بودند حسین به یاران فرمود این جماعت را آب دهید مردان را سیراب کنید و اسبان را اندکی تشنگی بنشانید چون این کردند کاسه و تشت میآوردند و از آب پر میکردند نزدیک اسبان میبردند، چون اسبی سه یا چهار یا پنج جرعه می نوشید، از آن اسب دور کرده نزدیک اسب دیگر می بردند، تا همه اسبان را آب دادند <تصفيق> علی ابن تعان مهاربی گفت آن روز باهر بودم و آخر همه آمدم چون حسین تشنگی من و اسب مرا دید فرمود راویه را بخوابان من مقصود او ندانستم چون راویه به زبان ما مشک را گویند و به زبان مردم هجاز آن شطر که مشک آب را برو بار کنند و مشک خواباندنی نیست چون دریافت که من نفهمیدم گفت برادر زاده شطر را به خابان من شطر را خوابانیدم و فرمود بنوش و من هرچه میخواستم بنوشم آب بیرون میریخت حسین فرمود مشک را بگردان من ندانستم چه کنم خود برخاست و مشک را بگردانید آب نوشیدم و اسب را سیراب کردم هر همچنان در پیش حسین ایستاده بود تا هنگام نماز ظهر شد حسین حجاج مسروق را فرمود از آن بگوید از آن بگفت و هنگام اقامه حسین بیرون آمد با ردا و نعلین خدای را سپاس گفت و ستایش کرد. اونگاه گفت، ای مردم، من نزد شما نیامدم تا وقتی که نامه های شما به من رسید و فرستادگان شما آمدند که نزد ما آی، ما امامی نداریم، شاید به سبب تو خداوند ما را بر ثواب و حق جمع کند، اگر بر همان اهد و پیمان استوار هستید، باز نمایید که مایه اطمینان من باشد و اگر نبر آن اهدید که بودید و آمدن مرا ناخوشدارید از همین جای باز می گردم و بدان جایی که بودم میروم هیچ یک کلمه در جواب نگفت پس معزن را فرمود اقامه گوی او اقامه نماز گفت پس بهور گفت می‌خواهی با اصحاب خود نماز گذاری؟ گفت نه بلکه تو نماز گذار و ما همه با تو نماز گذاریم پس حسین نماز گذارد و آنان اقتدا کردند. حسین به خیمه درآمد و اصحاب گرده او بگرفتند و هر به جای خود بازگشت و داخل خیمه شد که برای او برافراشته بودند و گروهی از یاران گردوی وی فراهم شدند و باقی به صفهای خود بازگشتند. هر یک لگام اسب خود بگرفت و در سایه بنشست. باز معزن برای نماز عصر از آن گفت و اقامه حسین را پیش داشتند و با همه نماز بگذارد، اونگاه روی به نمود و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد، پس از آن گفت، اما بعد، ای مردم، از خدای بترسید و حق را برای اهلش بشناسید، خدای تعالی بیشتر از شما راضی گردد، و ما اهل بیت محمد، اولاترین به تصدی امر خلافت از این مدعیان مقامی که از آن آنها نیست و میان شما به ستم و زور رفتار می کنند و اگر از حق عبا دارید و ما را نمیپسندید و حق ما را نمیشناسید و رأی شما اکنون غیر از آن است که در نامه ها فرستاده بودید و فرستادگان شما گفتند از نزد شما برمیگردم هر گفت سوگند به خدا که من از این نامه‌ها و فرستادگان که می‌گویی چیزی نمیدانم. حسین به یک نفر از همراهان گفت: ای عقبہ ابن سمعان، آن خرجین را که نامه های ایشان در آن است، حاضر کن. او خرجین را انباشته از نامه‌ها بیاورد و نزد او ریخت. هر گفت: ما از اینها که نامه نوشته اند نیستیم. ما را فرمودن چون تو را دیدیم از تو جدا نشویم تا تو را نزد الله زیاد به بکوفه بریم حسین گفت مرگ به تو نزدیکتر است از این آنگاه اصحاب خود را فرمود سوار شوید سوار شدند و به تا زنان هم سوار گشتند و اصحاب را گفت بازگردید چون خواستند بازگردند آن مردم بر او را بگرفتند حسین گفت ای هر مادرت به عزایت نشیند چه میخواهی؟ هر گفت اگر دیگری از عرب این کلمه را با من گفته بود در مثل این حالت نام مادر او را میبردم هر که باشد ولی که نام مادرتو نتوان برد مگر به بهترین وجه. حسین گفت چه می‌خوای؟ هر گفت «میخواهم تو را نزد عبیদুল্লাহ برم. امام گفت به خدا قسم با تو نیایم. هر گفت به خدا قسم تو را رها نکنم سه بار سخن تکرار کردند چون گفتگو دراز شد هر گفت مرا به قتال امر نکردند همین اندازه مأمورم از تو جدا نشوم تا به کوفه ات اکنون که از کوفه آمدن عباداری راهی برگزین که نه به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی و این راه طریق عدالت است میان من و تو تا من به امیر نامه نویسم و تو نیز نامه به یزید یا عبید فرستی شاید خداوند امری آورد که من بیگزند برهم و مبتلا به کار تو نشوم پس از این راه سیر کن حسین از راه عزیب و قادسیه به جانب چپ اینان تافت و هر با همراهان باوی رفتن عقبت ابن غیرار گفت حسین در حسن برخاست و سپاس خدای بگفت و او را ستایش کرد آنگاه گفت کاری پیش آمد که میبینید دنیا دگرگون شد آن چه نیکو بود از آن پشت نمود و شتابان بگذشت نماند از آن مگر تهماندهی مانند آن آب که در بون زرفی به ماند و دور بریزند و زندگی پس و ناچیزی مانند چراگاه ناگوار نمیبینید بینید به حق عمل نمی شود و از باطل اجتناب نمیگردد مؤمن را باید حقجوی و راغب به لقای پروردگار بود و مرگ را من جز سعادت شهادت نبینم و زندگانی با ستمکاران را غیر ستوه و رنجش دل ندانم زهیر ابن قین برخاست و به همراهان خود گفت شما سخن میگویید یا من؟ گفتن تو سخن گوید. پس خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و گفت یبنه رسول الله خدایت راه نما باد به خیر گفتار تو را شنیدیم به خدا سوگند که اگر دنیا جاویدان میماند و ما جاویدان آن میماندیم و تنها برای یاری تو و جانبازی در راحت کشته میشدیم باز بیرون شدن از دنیا را با تو برماندن بر دنیای بیتو تو ترجیح میدادیم پس حسین او را دعا کرد و پاسخی نیکو داد. ناف ابن هلال برجست و گفت به خدا سوگند که ما لقای پروردگار را ناخوش نداریم و بر نیت و بصیرت خود دوست داریم هر که تو را دوست دارد و دشمنیم با هر که دشمن تو باشد. بریر برخاست و گفت قسم به خدا یبن رسول الله خداوند منت گذاشت به وجود تو بر ما که پیش تو کارزار کنیم و اعضای ما را پاره پاره کنند آنگاه جد تو شفیع ما باشد در روز قیامت حسین در منزلگاه بیزه برای اصحاب خود و همراهان هر خود خواند ای مردم پیامبر فرمود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 و خاندان من با های شماست و من سرمشق و پیشوای شما در زندگانی ما تولمال را به خود اختصاص نمی دهیم و صرف خاندان خود نمی کنیم مانند یکی از شما زندگی می کنیم تا شما به ما تأثی کنید در ترک اصراف و تجمل و اگر چنین نکنید و بر عهد خود استوار نباشید و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 و هر پیوسته هم راه حسین میرفت و با او می گفت از برای خدا جان خیش را پاس دار که من یقین دارم اگر قتال کنی کشته می شوی. حسین به او گفت آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ و آیا اگر مرا بکشید دیگر مرگ از شما میگذرد؟ من همان را می گویم که آن مرد اوسی با پسر ام خود گفت در وقتی که می خواست یاری پیغمبر کند و پسر عمش او را میترساند و میگفت کجا میروی که کشته شوی گفت من میروم و جوان مرد را مرگ ننگ نیست اگر نیت او حق باشد و مخلصانه بکوشد و جان بازی کند چون از جهان بیرون رود با نا دست نداده باشد و مردم بر مرگ او اندوه خورند پس اگر زنده ماندم پشیمان نیستم و اگر بمیرم مرا ملامت نکنند این زلت تو را بس که زنده باشی و خار گردی و ناکام چون هر این بشنید از او دورتر شد و با همراهان خود از یک سوی میرفت و حسین در ناحیتی دیگر به منزلگاه اوزیبل هجانات رسیدند ناگهان چهار مرد سوار نمودار شدند آنها نافع ابن هلال، مجمع ابن عبدالله و امر ابن خالد و ترمه بودند و اسب ناف ابن هلار را یدک کرده بودند و آن اسب کامل نام داشت و راهنمای آنان ترمه ابن عدی بود تا به حسین رسیدن چون نظر ترمه به حسین افتاد این رجز خواندن گرفت ای شطر من ما ترس که چنین میرانمت بشتاب که پیش از سهرگاه با بهترین سواران و نیکوترین مسافران به مرد والاتبار رسانی من. به آن بزرگوار گشاد دل آزاد تا روزگار باگیست خداوند نگه دارد او را خاندان پیغمبر خاندان فخرند مهترانی درخشند روی نیزدارانی نیزهاشان گندمگون تیغزنانی تیغهاشان تیز ای خداوند هم سود و هم زیان سالار من حسین را فیروزی بخش بر سرکشانی که پسله کفارند و فرزندان نفرین شده ابو سفیان یزید که از شراب ناسیراست و ابن زیاد که زاده زناست هر روی به ها نمود و گفت این چند تن از مردم کوفند و من آنها را بازداشت می یا به کوفه برمیگردانم. حسین گفت نمی گذارم و از هر گزندی که خیش را حفظ کنم آنها را نیز حفظ کنم که اینها یاران منند و به منزلت آن کسانی که با من از مدینه آمدند پس اگر بران عهد که با من بستی ثابتی دست از آنها بدار وگرنه با تو جنگ خواهم کرد و هر دست باز داشت حسین به آنها گفت مرا خبر دهید از حال مردم در کوفه شاید از روی تعجب که زود پیمان شکستند مجمع ابن عبدالله عایزی گفت اشراف مردم را رشوتهای گزاف دادند و چشم آنها را پر کردند به مال تا دل آنها به بنی امیه گرایید و مایل آنان شدند و یک دل و یک جهت دشمن تو گشتند اما سایر مردم دلشان به سوی توست و فردا شمشیرشان به روی تو آنگاه حسین از رسول خود قیس ابن مسحر سیداوی پرسید گفتند حسین ابن تمیم او را بگرفت و نزد ابن زیاد فرستاد ابن زیاد بفرمود تا برود و تو را و پدر تو را لعن کند قیس رفت و بر تو و پدرت درود فرستاد و ابن زیاد و پدرش را لعن کرد و مردم را به یاری تو بخاند و از آمدن تو خبر داد پس ابن زیاد بفرمود او را از بالای قصر به زیر انداختند اشک در چشم حسین بگردید و آن را نتوانست نگاه دارد و این آیه قرائت کرد فمنهم هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا بعضی از مؤمنان جان باختند بر سر عهدی که با خدا بسته بودند و بعضی چشم به راه آن جان باختند و عهدشان بیهیش تغییری همان است. ماه ابن عدی نزدیک آمد و گفت با تو اندک مردم بینم و همین اصحاب هرد در جنگ بر تو غالب آیند من یک روز پیش از بیرون آمدن از کوفه انبوهی دیدم بیرون شهر پرسیدم گفتند است سان میبینند که به جنگ حسین فرستند و تا کنون انبوهی بدان کسرت ندیدم تو را به خدا سوگند که اگر توانی یک وجب نزدیک آنان مرو و اگر خواهی در معمنی فرودای که سنگر تو باشد و در پناه آنجا بنشینی تا رأی خیش بینی و تو را راه چاره معلوم گردد و بدان کار فرمایی. پس بیا تا تو را در کوه اجا فرود آورم به خدا سوگند که این کوه سنگر ما بود و ما را از پادشاهان قسان و همیر و نعمان ابن منزر و از سرخ و سفید حفظ کرد و به خدا سوگند هیچگاه زلیل نگشتیم پس با من بیا تا به جا فرود آورمت و سوی مردان قبیله طی در کوه اجا و سلما بفرست ده روز نگذرد که قبیله طی سواره و پیاده نزد تو آیند و تا هر زمان خواهی نزد ما باش و اگر خدای نکرده اتفاقی رخ دهد من با تو پیمان کنم که ده هزار مرد تایی پیش روی تو شمشیر زنند و تا زنده اند نگذارند دست هیچ کس به تو برسد حسین گفت خداوند تو را جزای نیکو دهد ما و این گروه اصحاب هرد پیمانی بستیم که نمیتوانیم بازگردیم و نمیدانیم عاقبت کار ما و آنها به کجا میانجامد طور ماهبل عدی گفت حسین را وداع کردم و با او گفتم خدا شر جن و امس را از تو دور کند من برای کسان خیش از کوفه آزوقه آوردهام و نفقه آنها نزد من است بروم و آزوغه آنها را برسانم آنگاه سوی تو باز آیم و اگر به تو رسم البته تو را یاری کنم گفت اگر قصد یاری من داری بشتاب خدای بر تو بخشاید دانستم به مردان محتاج است نزد اهل خیش رفتم و کار آنها راست کردم و وسیعت به جای آوردم از عجله من تعجب کردم مقصود خود گفتم و از راه بنی سعر روانه شدم تا به اوزه بلهجانات رسیدم سماعت ابن بعد را دیدم خبر کشته شدن حسین را دو بازگشتم حسین رفت تا در قصر بنی مقاتل فرود آمد خیمهای بر سر پا و نیزهای بر افراشته و اسبی ایستاده دید پرسید این خیمه از آن کیست؟ گفتند از عبیدالله ابن حر جعفی حسین مردی از یاران خود که حجاج بن مسروق جعفی نام داشت سوی او بفرستاد او رفت و سلام کرد عبدالله جواب سلام بداد و پرسید چه خبر گفت خداوند تو را کرامتی روزی کرده است اگر قابل باشی گفت چه کرامت گفت اینک حسین ابن علی تو را به یاری خود میخواند اگر پیش او کارزار کنی معجور گردی و اگر کشته شوی شهید باشی عبیدالله گفت ای حجاج والله من از کوفه بیرون نیامدم مگر از ترس اینکه حسین به دانجا آید و من آنجا باشم و یاری او نکنم دیدم بسیار مردم برای جنگ او بیرون رفتند و شیعیان وی را بیار و تنها گذاشتند و دانستم البته کشته می شود و من قادر بر یاری او نیستم، پس دوست ندارم او را ببینم و او مرا ببیند، بازگرد و این سخن با او بگوی، او بیامد و بگفت، پس حسین خود برخاست و نعلین بپوشید و بیامد با گروهی از اصحاب و برادران و اهل بیت خود، چون در خیمه در آمد و سلام کرد، اویدالله از سطر مجلس برجست و خدمت کرد، و حسین بنشست و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد آنگاه گفت ای پسر هر اهل شهر شما سوی من نامه نوشتند که بر نصرت من هم رأی و متفقند و مرا خواستند بهدانجا روم اکنون آمدم و میبینم که حقیقت کار چنان نیست و من تو را به نصرت خاندان پیغمبر میخوانم. اگر حق خیش باز یافتیم خدای را سپاس گذاریم و اگر حق ما را ندادند و ستم کردند بر ما تو از یاران ما باشی در طلب حق عبید الله گفت یبن رسول الله اگر تو را در کوفه یاران و شیعیان بود و به یاری آنها امیدی بود من از همه آنها مجاهدت بیشتر می کردم. ولی کن شیعه تو در کوفه نماندند و از ترس شمشیر بنی امیه از منازل خود بیرون رفتند حسین گفت ای مرد تو خطا بسیار کردی و خدای عزوجل تو را معاخذه کند به آنچه چه کرده ای مگر در این ساعت سوی او بازگردی و مرا یاری کنی گفت یبن رسول الله اگر به یاری تو آیم همان اول پیش روی تو کشته شوم. ولیکن این اسب من برگیر به خدا قسم که هرگز سوار آن در طلب چیزی نرفتم مگر به آن رسیدم و هیچکس در طلب من نیامد مگر نجات یافتم این اسب من آن را برگیر پس حسین روی از او بگردانید و گفت نه حاجت به تو دارم و نه به اسب تو و گمراهان را به یاری خیش نطلبم. از اینجا بگریس. نه با ما باش و نه بر ما چون اگر کسی بانگ ما را بشنود و اجابت ما نکند خدا او را به روی در آتش افکند پس از آن عبید الله همچنان دریغ میخورد و از تأسف دستها را به یک دیگر میزد و میگفت با خود چه کردم و شعرها بگفت که تا زنده ام دریغ در گردش است میان سینه و گردنم و اگر قرار بوده که حسرت روزی سینه ای را بشکافت آن روز امروز است که سینه مرا شکافت. امر ابن قیس مشرقی گفت داخل شدیم بر حسین من و پسر عمم و او در منزلگاه قصر بنی مقاتل بود بر او سلام کردیم و پسر با او گفت این سیاهی که در محاسن تو بینم از خذاب است یا موی تو خود بدین رنگ است گفت خذاب است موی ما هاشم زود سپید میشود آنگاه پرسید آیا به یاری من آمدید من گفتم مردی هستم بسیار ایال و مال مردم بسیار نزد من است نمیدانم کار به کجا انجامد و خوش ندارم امانت مردم را زایع بگذارم و پسر ام من هم مانند این گفت حسین گفت، پس از اینجا بروید که هرکس فریاد ما را بشنود و شبه ما را ببیند و اجابت ما نکند بر خداست که او را به روی در آتش اندازد. چون آخر شب شد، حسین فرمود آب برگیرند و کوچ کرد و از قصر بنی مقاتل روانه شدند. اقبت ابن سمان گفت، ساعتی رفتیم. حسین را همچنان که بر اسب نشسته بود خوابی سبک بگرفت. پس از لحظه بیدار شد و گفت انا لله و انا الیه راجعون و لله رب العالمین این سخن را دو سه بار تکرار کرد فرزندش علی ابن حسین که هم بر اسفی سوار بود روی بدو کرد و گفت چرا حمد خدای گفتی و انا لله گفتی؟ گفت خواب مرادر رو بود اسب سواری پیش روی من نمودار شد می گفت این قوم میروند و مرگ آنها را میبرد دانستم که خبر مرگ ما را به ما می دهند پسر گفت ای پدر آیا ما برحق نیستیم گفت چرا سوگند به آن خدا که بازگشت بندگان سوی اوست گفت پس باک نداریم و محق باشیم و درگذری حسین گفت خدا تو را جزای خیر دهد بهترین جزایی که فرزندی را باشد از پدری چون بامداد شد حسین فرود آمد و نماز صبح بگذارد و زود سوار شد و با اصحاب خود راه دست چپ گرفت هرچه حسین میخواست اصحاب را پراکنده سازد هر آمد و نمیگذاشت و هرچه هر, هر میخواست آنها را به جانب کوفه برد و اصرار میکرد آنها امتناع میکردند. تا از مقابل کوفه گذشتند و بالا رفتند به سمت شمال تا به نینوا رسیدند آنجا که حسین فرود آمد ناگهان شطرسواری تمام صلاح کمان بردوش از کوفه آمد همه ایستاده او را می نگریستند. چون برسید بر هر و همراهان او سلام کرد و بر حسین و اصحاب او سلام نکرد نامهای به دست هرداد از عبیدالله زیاد و در آن نامه نوشته بود همان هنگام که نامه من به تو رسد و فرستاده من نزد تو آید حسین را نگاه دار و تنگیر بر او و او را فرود میاور مگر در بیابان بی سنگر و پناه و بی آب فرستاده خود را فرمودم از تو جدا نشود تا خبر انجام دادن فرمان مرا بیاورد بس سلام پر و نامه بخاند با اصحاب حسین گفت این نامه عبید الله هست مرا فرموده است در هر جا نامه او به دست من رسد شما را باز دارم و این فرستاده اوست از من جدا نمی شود تا فرمان او را درباره شما به انجام رسانم ابو شعصا از اصحاب حسین سوی آن فرستاده نگریست به نظرش آشنا آمد گفت آیا تو مالک ابن نسیری؟ گفت آری و او هم از کنده بود ابو شصا گفت مادر به عذایت تو به چه ای؟ گفت چاوردم امام خود را فرمان بردم و به بیعت خود وفادار ماندم ابو شصا گفت نافرمانی پروردگار کردی و امام خود را اطاعت کردی به چیزی که موجب هلاك خود توست هم ننگ نصیب تو شد هم آتش و امام تو هم بد امامی است خدای عزوجل فرماید و جعلناهم ائمه يدعون ال النار و یوم القیامت لا ينصرون آنها را پیشوایانی قرار دادیم که دعوت سوی آتش میکنند و کسی روز قیامت یاریشان نمیکند امام تو از ایشان است هر حسین و اصحاب او را سخت گرفته بود که فرود دایند در همان مکان بی آب و آبادی حسین گفت وای بر تو بگذار در این ده یعنی نینوا قاضریه یا انده شفیه فروداییم هر گفت نه قسم به خدا نمیتوانم این مرد را بر من جاسوس کرده. زهیر ابن قین گفت قسم به خدا چنان می بینم کار پس از این سختتر شود یبن رسول الله قتال با این جماعت در این ساعت ما را آسانتر است از جنگ با آنها که بعد از این آیند. به جان من قسم که بعد از ایشان آیند کسانی که ما طاقت مبارزه با آنها نداریم. حسین گفت من ابتدا به قتال با آنها نکنم.